<تصفح> بسم الله الرحمن الله و الله وجه شد که در این بحث بحثی که شما بحث دیروز رو تمام بکنیم در کلمات قدم های اصحاب ما تا یه مدت زمان مسئله روایات و نصوصی که متابقه با روایات بودن با اون تبنیات و استظهارهای خودشون فرمی داشتن و اصولا فکر قدیم ما توش تبنی نداشت مواردی بود آقا من در اینکه مثال روشن بشه همینجا در این همین مسئله ما نحنفی تکریر میکنیم تا سؤید در درکشی اینطوری بود مثلا گفت مرد ز وجر عن الاغرا نمیرا الکس این معنی واسه معنی واسه نیورد مثلا در کتاب مغنه آمده لات و رجل خبر عن الاغرا من فعل ذلک نمیرا الکس تقریبا مکثاتی کمی تقریبا چند یه خطوالی بشه ولی معنی در مقابل عبارت شهر رضا رو خوندید و تغذیه تزیج از آقانال کمرات الاعراب دیدید؟ این بحث هم این و تزویج که ظاهرش حرمت تزیجه، از این حرمتی که اون دو پساد میشه. از آقانال کمرات الاعراب خودشون از ناس استخمه حرمت کردند، این و تغذیه چون استظهار خودشه از نفر جزا کرده گفت این نبا عبدالله همه انسان من تذب و زیار قنع رفت الاخرم لم یر خیران عبدال این لم خیران عبدال ارز کردیم تا که من معتقدم و به شدت هم اعتقال دارم صاحب فقر یا مرمون صدو اینا خیلی مقیدن یعنی مقید صد درصدی که از متون روایات خارج نشن این روایت اگر متن این باشه خیران ی این رو ما الان نداریم لمیر خیران لمیر خیران داریم احتمالا که ایشون تفسیر کرده باشه به جای لمیر ال... خیران فرمونده باشه لمیر خیران هست اما خیلی بعیده اونی که من خود من با تطبعی که دارم اعتقادم اینه که این روایت دوزه البته این مرد فعلا به ما نرسیده لمیر خیران به ما رسیده لنیار خیران عدلان است حالا چرا صاحب تخو رضا هست این روایت باشه چرا اون متن آورده احتمال میدن ولی بله علما اینطوری دیگه حالا قدس صاحب رضا اون احتمال دو نکته رو میدن یک نکته این که اون متن لنیار خیران رو چون متن که لنیار الخساس دو نسخه داشت یک نسخه منساب تر اون تذکر یک نسخه منفذر نیه اون رو اون متن رو بیاره به خاطر اختلاف مصغری که در اون داره دو و سی و اون شاید اون لم یرا الحسنات اتن تذلیج در نمی آورد لم یرا الحسنات خوبی نمیبینه شراحت داره اگر هم متن این بود لم یرا خیر نمیبینه این هم ممکن بود که تراحت باشه اما این کلمه ابدا دیدم یرا ابدا این ابدا این مناسب با تحریمه یعنی مناسب با وثق تزویج پس در اینجا یک مراد تبنی صاحب کتابه که ایشون از اون مرد این فتبار داره ادتق تزویج حالا در کتاب مغنایه شیخ مفید دقت کنید شیخ مفید اینجور داره لا ین دلیل اهدن ان يعقد نکاحا و الخمره این هم تلقیق تبنی شیخ مفیده این به جایی اتقیق و ینبقی یعنی کراه هم تقدر چقدر ذرافت کارو به کار برده لا ینبقی فین نبو رویان صادق انهو قال من فعل داله که لمیر حسنا این لمیر خیران اولا نهی لم لمیر حسنا مرحوم شیخ مفید قدس الله و سره از این عبارت شراحت فهمیدن که یک اما از عبارت فرق و حالا این یک نقصه بعضی های ما هم فوق های ما هم ارز کردن چون افتادن توی تقریح مسئله و خصوصیات مسئله و ریزه کاری های مسئله باز یک جهازی دیگر رو در نظر گرفت مثلا با مثال در کتاب شرایع به جای من تزن یا به گلایم بقی چه کرده ایشان؟ چون یک نقطی دیگرم عنوان تذروجه هست که تذروجه همی چی؟ یعنی به اصطلاح مراد آمیزه جینتویست مثلا یا مراد خطبه یعنی رفتن خاسگاریست مثلا یا اقضام مثلا یا مراد به اصطلاح معروف خود عقده در کتاب شرایط داره اینطور و یک ره و ایقال عقد و در قمرات العقره خیلی ازدرافت بکنم همولای لبیانالخسنا رو کراحت فهمیده تزوجه رو هم مرادش ایقاال عهده نه مراد از تزوجه مثلا خود عمل باشه یا مراد از تزوجه مثلا خواستگاری باشه کسی برای خواستگاری داده مراد از زوجیت در اینجا خود اجراع عهده و یک رهو این زرافتی که من گم تبر نهینه تا یه مزدفی فوقهای ما مثلا صدوق لا تتزلل ولغا على تشون داس تتزلل این ملقا تغییر شده اما همون متن رو با لا تتزلل ولغا على العقرب فانه من فعل ذلك لا يرى الحسن تغییر مختصر شده یعنی مست... لا بس لا آورده به معنی من لا يرى الحسن که انسان ازش شراحت بفهمه یا horror اما عبارت فقره را هم خونید عبارت مرحوم شیخ مبیدو خونید بعد این عبارت همین روایت ببینید چجور بوده منتظب و جبل قمر اقرب لن یرال حسنا این که میگیم فوقهای قدم ما متون روایات رو حفظ می کردن یا اگر تبل بود کمی خارج میشدن ببینید این عبارت منتظب و جبل قمر اقرب لن یرال حسنا آمد تو شرایع اینجوری شد همین روایت در کتاب شرایط این شکل پیدا کرد و یکره و ایقاق العقل ولی که ترافت العقل که اصلا خیلی با امت این ام فرق داره به جهه لنیاره حسنه شد یکره به جای تذبجی شد ایقاق العقل که دقیقا نشون بده مراد جدی روایه چیه؟ این راجه این روایت. خب تا اینجا که ما دیروز شواهد رو کردیم، به این نتیجه رسیدیم انصافاً از علیه ناسباد که این روایت آمده در قمال از کتابیشان بوده یا کتاب اصلی دیگری بوده دو تا از قومی دو جور نهارتنه یه متن من تذوجه که احمد اشعری خبنیشون دقیق تره یه مثلا من سا او و بس هست و نشون دادیم که در عبارات بعدی مثل فخور مغنه مغنهه در این وقت آبای فقها رسو تذوجه اون ساخره دیگه نه درست؟ ترسون حالا شواهدی که الان اقامه کردیم یکی به خاطر توسقیت و قوت و مطانت علمی مرمون احمد عشقری از یک ترم در نظر ایشان و مراعات قواهد از یک این شواهدی که در مقام پتواه آمد از یک و اصولا احتمال میدن اینا بسید خیلی بعید میدونستن که سفر با قمر در اقرب مخروف باشه چون خب بالاخره در ما دو روز و خوردهی در اون روزی سوال ماه این قمر در اقرب خب که جلو کار مردمون میگید مخصوصا اگر سافره حالا تذبجه رو معنا کردیم میمونه من سافره سافره یعنی چی؟ یعنی انشاء سفر بکنه؟ یا نه شون من در محل خودش از کردم یکی نوکاتی بود حالا نوکاته ادر یا ادر یا ادر یا دیگری یا ادر آمد خود سفر اسم به اصطلاح معناست مصدر نیست ازش اشتغاه نمیشه سفر و انا این سفری که ما میگیم اگر بخوان ازش معنای حدثی بگیرن باقی مفاعله میدارن سافر بجرد این طلب بسه به سفر سافره یعنی طلب بسه به سفر سفر هم از خرید اون ما معنی معنای اینقدر انقدر واضحه واضحه نیست مثلا بعضی از اهل سنت معترضان سفر ایناست که انسان که مثلا زبان ما سوار ماشین داره میره ماشین داره میره مسافر اگر تو راه رفتن قهوخونه‌ای بود ایستاد چند لحظه چای می‌خوردن اون یک ساعت نیم ساعت این دیگه مسافر نیست مسافر اون کسی است که داره میره ازا در حال راه رفتن نماز شخصیتونه و اما اگر ایستاد نه برای اینکه توی قهوخونه چای بخوره نماز شما این بر میگرد به تفسیر آیا بلا نه خب چرا در سفینه که نماز میخوندن و محمل میخوندن سفینه که میشه نماز یا قطاری که خیلی آرام میره نه سفینه در حال عادی چون صاف میرفته در شرط میخوندن الان یه حاله دقیق فرمونی یا الان در حاضر که خب میشه خون راحت میشه خون قبل هم توش میویسن قبل آسانه تکانی هم نداره حرکتی نداره خب درم شم بار تا به هر حال اینه که این حالت سفر یعنی البته پیش علماء ما این معنا قبول نیفتاده نیمو خواهم بگم درسته فقط نه میکنم وقت ما اگر سفر رو اینجوری بگیم آیا سفر حال اقتعاد انسان از به اصطلاح عوامانه ما که الان ک از خیلی لفظ وطن هست ما زیاد در روایت نداریم به جای اون مهر زندگی ما به کار می‌برین چوری که هر زندگی من خود خود زندگیش اساس مقر زندگی حالا میخواد وطن استفاده باشه نباشه آینی که فرض کن مثلا اهل شهرت یک اشخاص دیگه هستند در حال دارن کار می‌کنن زندگی دارن خونه دارن زندگی دارن خب اون مقر اونهاست مقر زندگی اونهاست اصلا مگر وطن باشه نشه مهر زندگی آیا در حال اطاعت یا شامل میشه خود بعد از مقره زندی الان عرفی این اینطور میگه حالا فرض کنید کسی یک ولی ال زلی یا اون اولیالا تصرف کرد با یک اشاره دست میگه قم تهران. همین که در تهران واقع شد میگه مسافره هر کسی که از خانه اش زندگیش دور باشه میگه مسافر سر مسافر دیگه خب حالا شما مثلا 15 روز 20 روز در مشهد میمونید برای عزاداری زنده عزا بگیم این دروذه که روزو خرده ای که خمر در اعربه شراحت داره خب خیلی عجیبه یعنی ما هم تو زندگیم مو... حالا برای ازدواج مراعات مراقب در اقرب. برای سفر مراعات قبر در اقرب نیمی روشن شد نکته یعنی ما الان سوالا بگفتیم فقر رضا و فتاوه و فرسان اوسقییت احمد اشعری و اینها وارد بارد بشیم. اما اگر واقع زندگیم نگاه بکنی یک احتمال هم داره مثل ساخره رو به خاطر اون روایتی که داره که علی محسن سفر برام برای نهروان اون منجم کو hazards همون نه روایت‌ها هم داره که میگه خب سفر دارم طالب اینا میگه نه برو سفر گوش کن شاید چون این بخش سفر رو معارض می‌دیدن قبول نکردن حرف کردن شاید البته نمی‌فهمم واقعا قبول نکردن یا این بخش سفر نبوده از اشتباهاتی است که در کتاب محاسب راه پیدا کرده علایوهانه شواهد ما اجمالا نشان میده که این دو تا نسخه بوده ولیکن با این دقتی که الان ما براتون کردیم با شواهد خارجی فتوا فتوه های بعدی وجود ما آرز در روایات اینا همه معید این مطلب میشه که اون سافره ثابت نباشه مطلب رواید اگر بخواهد درست باشه همون من تذبجه و قمر و فیل اقربه سافره توش نداره با همین شواهدی که براتون عرض کردیم و مسلک شیخ صدوق این بوده که متون روایات رو بیاره دیگه رو این جهاز حالا مثلا فرض این نو سه بار کذا اینا رنگ فقط چیزی که هست به خاطر این نکته آیا ممکن است مرحوم صدوق که دو متن رو در دو جای کتاب آورده یه جمله منتظر جا جمله منصا برای او تزوج آورده در حقیقت نظرش به اون چی باشه در میراث های قوم حدیثی قوم موجود بوده مثلا در کتاب محاسم بوده من صافره در کتاب احمد بوده من صافره احمد عشق احمد برقی بوده من صافر شیخ صدوق هم هر بر نرگو کرده آیا این احتمال هست خوب دقت خود من این چه نکته پندی داره خیلی جاها این احتمال رو میدم در صدوق یعنی به نظر ما توجیه اساسی صدوق به نظر ما اینه که ایشون دو نسخه در این دو نسخه که در قوم شون هر در قم بودن این کتاب احمد عشقی یکم کتاب احمد برگی مرحوم کولمی از کتاب احمد کرده مرحوم شیخ توسی از دو احمد عشقی بگیم مرحوم شیخ صدوق احلی هر دنسته من این مطلب انصافاً به لحاظ واقع گرایی حرف خوبیه اما به لحاظه ظاهر نمیشه تریدش کرده شون صدوق داره روا محمد بن همرا قائلشون اینه که اگه گور روا محمد بن عمر برگردیم به مشیخه یا مشیخه در مشیخه طریق خودش رو به محمد بن داره دو تا طریق هم داره که یکی جا دو تا دقیقاً دو تا طریق به محمد بن داره که از باب قضایای اتفاقی در هیچ خود نه احمد اشعری هست نه احمد برقی هیچ کدومشون نیستن در دو طریق ایشان این دقت بفرمایید ما به حسد منتیجه هم داره چون هم در طریق احمد اشعری و هم در طریق برقی چی وجود داره ابراهیم پسر محمد ابن همران. اما طریق شیخ صدوق به محمد ابن صحیح صحیحه ابهام نداره اشکال نداره یعنی طرق قصه خیلی زیاده خود من تماهلن بینید که مرگون صدوق از اون میراث موجود در قومت که عباره از این دو کتاب بوده نقل کرده لیکن ظاهر عبارت شما ما الان حکم نمیکنیم یعنی بنای و حوضه های ما الان حینه بگم نگیشان به طریق خودش از کتاب از محمد بن همران البته خوب دقت بفرمایید مشیخی شیخ توصی در کتاب تحبیب استفسار شما میگه مثلا از حج کرده علی بن رانی کوره از چه از بایین میگم مشیخ در کتاب تحبیب استفسار طریق ایشان به کتبه اما مشیخه شیخ صدوق طریق ایشان به روایت نه به کتب اشتباهه خود مرحوم استادای خویم چرا تو این تقالات چون دارم ما در دست قرار نمیشه درسته مطلب ایشان درسته تحلیلی هم داره ایشون تحلیش نفرمیدن تحلیلی و نکات فنی و ظریفی داره که بعد این شاء شو تو بحثای دیگه من قرض میکنیم و حالا همه بحث رو یکجا میکنم اصل این مطلب درسته مشیخه صدوق تاریخ ایشان به روایاته نه تاریخ ایشان به کتب خیلی از افرادی که ایشون در مشرق اسمشون رو کتاب نذاشتن اصلا ما اینا رو در حد یک راوی خیلی بسیطن حتی ممکنه اینقدر اینا بسیط باشن که وجود خارجیشون مشکوک باشه ما اصلا کلا اونا نمی‌شناسیم پس روایت یک چیزی مساله کتب چیز دیگری این نشون میده که ایشان حالا قاعدش این میشه که ما غالبا ایشان رو در مشیخه نگاه میکنیم اگر یکی از مشاهیر باشه عادتا از کتاب اونه عادتا این طوره مثلا در طریقیش اسم حسین سعیل هست اسم حسین محبوب هست عادتا از کتاب حسین سعیل هست عادتا از کتاب حسین محبوبه. این جهان اسم مشهوری که آمده نبی و صفوان این جوتا عادتن از این دو کتابه عادتن یعنی از کتاب ابن اومد و کتاب صفوان و اگر این ما به مشک حکم بکنیم سرط صحیح ها اشتباه نشه آه. این روایت قدق طریق صبوخ صحیحه به تاوندی ربا شو شو تعبیر به هویی هم نگردید گفته ربا محمد بن مهم را لکن مشکل اساسی اینه که این روایت در مصادر دیگر وا که آمده کتاب احمد اشعری و کتاب احمد بغوی در هر دو محمد نهمران ان الصادق علیه السلام فقط در کتاب صدوق آمده محمد نهمران ان عبی ان عبی عبدالله این علی عبی فقط در کتاب صدوق آمده جای دیگه نرفته ValidationError ولذا... الان نه. کافی دارید ابراهیم ابن محمد نهمران عن عبی بخش محمد بن عمران در هم احمد اشعری هم این کرده گفته ابراهیم محمد بن عمران انا ابي انا ابي عبد داره انا ابي اما مراد از پدر خود محمد بن عمرانه دقت فرمودید میگه مراد عمران نیست اما در روایتش طحو این مشکل رو داره در هر حال حالا بر می‌گردیم روی تفسیر اون جهتی که مربوط به کتاب این تا اینجا راجع به محن روایت و مسادرش اجمال و خود این حدیث محور اساسیش البته راجع به جعب ابراهیم به محمد ابن همران ما الان راجع به ایشان توصیقی نداریم و وضعی ایشان رو هم نمیشنسیم ابراهیم در چه حدی از خدر در یک نسخه از کتاب رساله عبیقالب زراری رساله فیاله این ما لعبیقالب به قالم زوراوی از بزرگان شیعه، شیخ شیعه معاصر است با به حساب مثل ابن قولهوی در بغداد و تمام زمان وفاتش و استاد شیخ مفید و یکی از مصادر نقل حدیث و میراث های شیعه در بغداد بواسطه ایشانه ایشان از نبادگان و از خاندان بوکیر برادر زوراوی ها که میگن که در زمان امام هادی اخری ها امام میگه یک نفر از این خاندان رو به نام زوراوی نام برد واسه نبود این دیگه به احترام ما بعدها تمام دستگان زراره و برادران زراره بوتن زراری ولو مال نوه های برادر ایشان بودن و همه اینها زراری میگفتن یکی که خود این ابو غالب زراری ابو غالب زراری اسم محمد ابن همران رو میبره با عنوان اینکه که خب لفظ جدش برادر جد میشه چیز این نوه نوهی به اصطلاح و بیشتر نصداد زراره و هم از کلیم همران هم متکلم بوده فقیل بوده و شوارد نشون میده که قبل از زراره شیعه بوده چون جزه هوارین از سجاب نام برده شده زراره امام زبان منباقه شیعه شده و این خاندان زراره در کوفه بدون شک بزرگترین خاندان شیعه و مشروطه این خانه خانواده شیعه به عنوان خاندان شیعه هیچ خلون به شعرت خاندان زراره نمیده ما نداریم خیلی خاندان از سر مرحوم بحرال در رجال بحرال علوم اگر مایه بودن ایشون یه فتی داره خانواده های شیعه آل عبی فلان آل عبی فلان اسمی بره انصافاً اعظم تمام این بیوت شیعه در کوفه همین خاندان زراره از همشون خود زراره طبعا مطلی دیگه زراره اصولاً عرب نبوده اهل ترکیه بوده ترکیه فعلی یا روم به اصلاً. رومی بوده. و خیلی هم زیبا و خیلی باحواد داره که گایواتی میه من نماز جمعه اصلا مجلس کوفه رو به هم میره اصلا دو تا مرد میشن که بعد نگاهش کنم گایم برمیگاش از بس شروع میشه بسیار مرد بزرگوار و شخصیت جدیقدری زراره و اضافه بر تمام اینها خاندان اینها یعنی زراری ها بزرگترین خاندانه به رسم شیعه در کوفه هست یعنی ما دیگه از این خانواده بزرگتر اینکه علت اینا ولادیشون با بنی بوده دلای یعنی هم پیمان یه اصطلاحی بودی که حالا شاید در خلال بحثام توضیح دادم سابقا هم توضیح دادم شیبانی که بهش شیبانی نیست ایشان اساسا شیبانی خب پس محمد ابن عمران پسر عمرانه مرحوم ابو غالب اسم ایشان برده و تشریح میکنه که راوی حدیث انوی عبدالله علی السلام این در وجود محمد ابن عمران نعید سربازان زواره هیچ جای شک من یه مقدار به خاطر بعضی از جهاتی که اینشالله مفید بشه برای آیان کتاب استال رو میخوید ولی تو بعضی از دیگه هم چاپی که من دارم موجم در جال حدیث یه در شونزه همه موجم استال اولا روایاتی که به این عنوان نوشتن محمد ابن و روايات هم زیاد داره سد و بیست پنج را با قولیشان به این عنوان محمد بن حمران روایت داره البته من چرا نه ارز عددی که در کتاب موجمازه صحیح نیست اشون مکررات رو در همه جا حساب نکرده مثلا اگه حدیث باهید همین حدیث فرسویی هم در فقیق آمده هم در کتاب کافی آمده دو تا شماره بشته یکی باید این, این داره. یکیه استفسار و رو چرا مشترکاتشون رو حساب کرده اما کافی با تحذیب یا کافی با فقیق حساب نکرده. زیرا این عددیه که ایشون در اینجا میاد مضافن به اینکه فقط در کتب اربعه است چون من عرض می کنم برای اینکه بعد ها خاصین گروهی یا فردی کاری بکنیم بر رجال این کارها باید روشن بشه این 125 که ایشون فرمودن دقیق نیست نه اینجا هرج و مرج میفرونه این عدد از اون کار ایشون نیست این کار گروه رجال است کار خود امام استاد این رضوان الله تعالی علیه این کار گروه رجاله این کار روی دقت انجام نشده هم در غیر و کتبه رو شامل نمیشه و هم مشکل دیگه این که حدرش دقیق نیست باید مکررات هست میشه تا بگیم این قدر روایت داره این دقیق نیست خب و متعرض شدن بعد یک عبولوی دارن من همیشه عرض کردم چون نسخه اصلی رجال و استاد رو من دیدم بوده خط خدایشان در نجم عبول و محمد ابن حالا و محمد ابن همران نهدی این خط خود استاد در هااش اون کتاب نوشته نوشته بود این خط خودشونه یعنی این نوشته استاد عبوله هامال ایشان. مثلاقال شخ این دیگه ما ایشان میید گروه رجال آماده کردن این عغوله ها که هستشون با خود نوری در هااش دفتر نوشتن یه د کردم چند بار شده از کردم ایشان استظهار پریم که محمد بن مهورران که در واریاست نحیه حالا بر توضیحاتش این حال بعد ایشون محمد ابن همرانم نه اعیم رو اسم بردن با این عنوان ارز کلم که یکی از خوبی های کتاب اصلا که این کار فنیه الان در دنیای علم کاملا این استاندار علمیست هر فردی و و همون عنوانی که نام میگرن عنوان داشته اصلا محمد ابن همرانی اکی. محمد ابن همرانم نه اعیم محمد ابن همرانم نه اعیم نه سلشل من و و هر عنوانی که در کتاب آمده در رجال آمده در فهارس آمده در روایات آمده ایشان به کار این کار بسیار کار خوبی خیلی برای پیدا کردن یعنی شما هر کتابی از این کتب عربه هر حدیث دیوانو اشتباه باشه اسمی رو که پیدا می‌کنین راحت می‌شین به کتابیشان مراجعه کنید به کتاب رجال دیگه بین راحت می‌شین مراجعه کنید زیرا کتابیشان این صحت رو داره و این کار صحیحیه. در غیر کتب عربه هم باز بشه یعنی وقتی بخوید ما رجالی بنویسید باید تمام این کتب یکی یکی دیده بشه همون اونوانی که در حدیث هست یا در هست اون بیاد بعد توضیح بدید که این آقا واسه این غلطه یا این آقا وجود نداره درسته صحیحش اینه این کار کار صحیحیه بسیار کار دقیق و درستی است که مرحوم استاد به کار بزن که مثلا فرض در قاموس هم این کار کارترش در قاموس مقاله نشه که خود داره. این کار نشده البته این مشهر میشه افر زیاد میشه ها چون ممکن است مثلا ایشان اسم احمد برگی ایشان ممکن ده دوازده بارو بگردن چون نیده در اسم احمد برگی در اسم احمد محمد برگی در اسم احمد محمد خالو به همچ رضا بکنی احمد محمد احمد نبی عبدالله ها. تمام جان یکی هست در کتاب و دیگه این کار نمی کنن. اما ایشان شما در کتب اربعه هر اسمی لوکیشن عین همون اسلگ دایشون هست حالا بعد توضیح اینه که این غلط دوست نیست چند زیاد شده چی شده اون توضیحاتی که بعد خود ایشان میگن این کار بسیار کار خوبیه بسیار بسیار کار دقیق و ظریف و صحیح بعد ایشان عبارت شیخ رو در فهرس آوردن من یکی دو دروسی لحظه محمد بن نه با نام خاطر فزروزی چون نکاتی رجالی لطیفی داره و واقعا مشکلی نیست خودمان هم ازش دیگر توش واقعا کار تنگی میه من همیش از دو مثال همیشه میخوام درجات کنم در ایشی که کارهای تنگی مراقبت میکنند سعی کاش تو کوکی آسان مراجعه محمدو نه همراهم نه عیان انتها هم همراه میمون سریع عیانم میمون سریع لحظه تابان اخبار نابیه جماعتون مرا دیشون از جماعت دریچه مشائخ بغداد هن از کدومیشون خودش ایشی ترسید در بغداد بودن خودی‌شون به کوفه نرفتن خودی‌شون به قم نه‌رفتن اصميراس‌ها یا به کوفه میرسه یا به قم میرسه بحث نمی‌کنه یک رابطه‌ای باید باشه این جماعت اصحابی که ایشون می‌فروند کی شیخ مفید ایش حسین بن قزاری نمازاری پدر چند نفر هستند تن عبدالمفضل شیبانی پیش از دین اهل سنت هم خیلی اونواز داره خیلی کثیر الحدیث خیلی در طلب حدیث سفر کرده به بلاد دور رفته خیلی اصلا کوفی بوده اما بعدها تا آخر اوم آخر اوم ساکن بغداد میشه در همون بغداد هم فوت میکنه اول مفضل شیبان سنیان برای سنیان تضعیفش کردن ما هم مرحومه شیخ نجاشی تضعیفش کردن سنیان میشون تضعیفیم اما خیلی پر پرحدیثه انصافت بود مرداد پرحدیثی شد ما هم ازش نداشته باشیم ایشون هم در حدیث نقش خوبی داره هم در فهرس نقش داره. مثلا ایشان عبال مفضل شیبانی به قوم آمده یه مقدار میراث قومی ها رو برای بغدادی ها برده این رابطه بین بغداد و قومه رابطه بعد من منجم در تیغایی که ایشان بغداد برده خیهرست ابن بوته است شخصی بنامه محمد ابن جعفر ابن بوته اثمان بوته بوته باشه شاید فالسی قدیم باشه محمد ابن جعفر معروف به ابن بوته که از اهل ادب و علم بوده و بزرگیه انصافا کتابهایی داشته بوده فهرستی داشته این فهرست به بغداد هم رسیده هم در اختیار شیخ بوده هم در اختیار نجاشی هر دو بزرغا فهرست نووت در اختیارشون بوده شیخ این نوسه عبدالمنظر در اختیار شده شیخ توسی حالا من راجع به فهرست نووت یک بحث وزغانی خیلی میخواد می‌خوام خیلی دراحتا داره نیست انجمنی زنده عرض می‌خونم جهت مناسب باشه که اثر این ابن باتش شیخی گردهش نظر شد ما من دارم این آراین کامپیوتر است منظورم در فهرس مجموعاً 355 مورد 36 مورد از این فهرس ابن باتششو نارم کنه معلوم شد. لکن نجاشی بیش از نیست. نه چی فهرس ما واقع غلطان کسیه. یکی از نقاط اخلاق شیخ بناجاشم اینه چون الان آن دقت در مسادر کار نمی کنن بردیان اعتراض شیخ اینجا گفت نگفتی خب این سرش اینه که اینجا میاد شیخ رو پهرست نبوته اعتماد میکنه. از کنم شیخ تقریبا اولین کسی در اصحاب ما که حجیت تعبدی خبر رو مطرح دقت کنه در اصحاب برداز ما اصلا حجیت تعبدی خبر مطرح نبود حتی اصحاب ما اینه من چند بار گفتن خوب دقت بکنه مثلا اهل سنت چند بار اهل کردن کارهای حدیثی رو از به اصطلاح رسمی دیگه که حدیث کار بکنن از قرن سرگوه شروع کرده از قرن اول از سالهای پنجاه و شست خیلی پر شروع کردن همشی هم سنیا تا های سده اتو در اینجا رجال و اصول شروع شد تاریخ رجال و اصول از سالهای 50 پنجه شروع میشه رجال مناقشات اصطردی و که میگه تقریبا شکلی به خودش میگیره سالهای 189 این 177-180 و اصول این منتقی میشه به چی؟ در قرن دیریست به بعد منتقی میشه که بیان رجال رو تو حدیث کار بکنن و لذا حدیث رو انتخاب بکنن مثلا میگن احمد نهنبر یک میلیون و هتست هزار حدیث نقل کرده که این کتابا نسند به پودویی آن Itajan هزارا استخراج شده یا بخاریی هرinstansen هزار هزار هدیث داریث نقوم کرده که این چهار هزار چون بخاری موجود بوده هفت میلیون حدیث تاشون هاشو کرده او ده از چهار حدیث با حدس مو از بخاری چهار هزار حدیثه موسى تماماً تقريباً کارهای مهم حدیثی مؤلف علیهم حدیث و اما چون سنن رسول الله (ص) به حساب فقه حدیثی سر حسابش نمی‌کنه مثلا مسند احمد 241 را در احمد احمد هم صحیح حساب میشه هم محدث و بخاری 256ه تا 306 یعنی از این قرن دوم 200 خرده تا 300 تمام کتب به بونه محدیسی اهل سنت که سیاستن جز اوناست در این زمان نرشی کده شد اصحاب ما این بحث ها رو نمی کردن خلاصه <تصفيق> بحث در. اونا می بحث این سقه اون ضعیف این فلا البته صحیح در اصطلاح اونها گفت مثل, مثل برنامه پلاستیکی که شخص داشته صحیح در اصطلاح هم یه نواخ نیست حتی صحیح مسلم که مسلم با بخاری فرضه نمیخوام الان همه بحثا اینجا بگن این شما الله تو فرصت های مناسب که میاره در صحیح و در میاره در حسن یا بعد اقسام دیگه قرعی دارن ما اصلا تو اون اقسام فری الحمدلله نرسیم اونها دارن صحیح و حسن حسن و صحیح صحیح حسن حالا اونها یه اقسام که ما تو اون اقسام نرس در بین شیعه ارز کردیم دو تا مسئله که اساسی مفرح بود من کراهان ارز کردشون این سهی مهمه و جایم از خلاصه مبانی در حجیت خبر سه تاست توش هم داره اما خلاصه سه تاست یک حجیت تعبدی یعنی شعره ما رو حج... تعبد داده که این خبری که داره این شراعته قبول بود لذا حجیت تعبدی شاخصه اینه ممیزه از شخصه اش داره هر جا اون مئیار بود اون خبر حجت داره اسمش حجه ترکودیه این مئیار داره مثلا اهلستان داره بودن مئیار این که راویش سبه باشه اخباری ها بودن مئیار از در کتاب مشغوره باشه اون سال و ساله آزون میفرن مئیار شنه از که راویش سبه باشه ازده گفتن راویش عدوی باشه این میشه مئیار هر کسی خبر اینجوری حج شد. این حجیت ترده دو حجیت اغلایی خبر یعنی ما با شواهد اقامه بکنیم که این متن مثلا از امام صادقه از رسول این دیگه میار نداره مجموع مثل این الان من سافره و تذردهش دفر کردیم ماه شواهد امامه کردیم که سافر ثابت نشد تذردهش ثابت شد تو این موزونی که داشتیم با فتاوه و اینها اما سافره ثابت نشد این مجموعه شواهد رو اقامه می کردن شواهد و غلایی دیگه مئیار توش نیست لیکن باز هم خبر به عنوان یک دلیل لحظی خبول می شود خوب به اطلاعش نمستد می به عمومش نمستد می, عموم می این مبنای دوم دو مبنای سوم عدم و خبر یعنی خبر با عنوان نه با موسوق و غلایی نه با فی نفسه بله مثل محوم سلو مرتزا اینا قائل بودن اون حکمی که در خبر ما وصول بوده نه خبر حکم ولذا با خبر معامله دلیل لبی میکردن نه لفظی روشت شد این خیلی کاره پس این سه ممنع همیشه در ذهن مبارک باشه بود. حجیت تحبودی حجیت اغلایی حجیت ادم و حجیت اسم با گرمیست من ارز کردم اصحاب ما دنبال حجیت تحبودی نرفتند سنی ها رفتند از ما نرفتند اصحاب ما به دنبال حجیت تحبودی نرفتند حالا جهاتش اینا قومی ها حجیت قبول کردن که لیکن بیشتر وصوخشون جنبه نقلی داشت خوب دفت بکنه اینه مثلا مشایه قبول کرده باشند در نصه مشبول داشته تلقیه و قبول استاد گفت اینجوری بعد دادی ها مثل شیخ مفید تبور کردن و رو لکن بیشتر جنبه‌های های شواهد کتاب، تاریخ، شواهد ساد مثل این ده دیگه مفیدش این کمتا مبنا شد دوتا مبنا مثل سهل مرتضا با تعمل در حالات ایشان ایشان قاهل به هدم همون هستن یعنی ایشان اگر با یه حکمیاره رواز میاده با خاطر اون حکمه ایشون رسول رو به هفتون داره اصلا به روایت بانوان با در این نگاه نمی کن. پس این مبانی اصحاب خود در ذهنتون باشه چون این تحولاتی که پیدا شده مال این مبانی اصحابه شیخ توسی در میان اصحاب ما تقریبا تا اولین کسی از زمان شیخ توسی چارصده از سالهای 150 هستا بحث و حجرت خبر سقه و هر اون مفرح رو دیگه در اون چارصد ما هم تو بغدار یک کسی نه نه نیز مثلا مسیح مثل یکی از اون زوجها مثلا دیگه انتخاب مصرف نکنیم بعد مصرف نکنیم لازم نیست صبر کنیم عبارتی که برگماده مزد مقدسیم دست اسم اما اصلا تو خونشون بهتر میمونه نه هر آدم یا حالا کسی بیان کرد بذار در همین نجات زمان جد و مراحل سلطان بلندگو رو بگم تو یه مدتی مناقشش کی جایز نیست تا اینکه بودن درس موضوعاً اصالتاً از شورای و, و ایشان دیگه امضا کردن و باز هم ایده بودن که خودش میشون نمیبرن بعض مخالفت میکردن اعتراض میکردن بو اینکه مثلا ایشون میگم ناجی اتهام میشه بوده عام میشه بعض اعتراض میکردن که ایشون کار درست نیست شو بلنگو درس بلند. بوده این تعجب نکنید یک مطلبی در یک بره از زمانی یک شکل بعد دیگه اصلا الان به شما بگم بلنگو جایزه قندیم گریم واقعا تعجب میکنه مثلا حرفین شرفه حرفی در بغداد زمان شیخ دیگه بحث حجیت خبر سکه روز نه بحث روز بود اگر کسی با خبر سقه یا امر حجتیست کل کل بشین مثلا بگم این صفیه مثلا یه چیزی میشه دقیق میفهمید البته شیخ هم ما بینه یعنی شیخ هم میاد میارهای مشهور بین اصحاب رو مراعات میکنه مثلا مکر دمداد رو هم میارهای اجماعی یکی از اون میارهایی بود که پس تو مثلا عبال بفضل شیبانی آدم خوبیه از دوها قبول داری اینه که شما میبینید شیخ عملا کارهای میکنه که با اون دقتهای نجاشی نمیخوره اون تفکر که عوض شده. نجاشی تفکرش تفکر بغداده که احتمالا شما ننوشتنی برای به رعی شیخ مفید نزدیکه نه به رعی تید و به رعی شیخ مفید یعنی حجیت و اغلایی خواب با تجميع شواهد و عقلا اینش شواهد مؤمنی آقا هر شواهده شواهد عقلا مؤمنی یا عقلا به مؤمنان نجاشی میشه این زنافرهایی که در کار نجاشی وجود داره مال این مبناس معلوم نجاشی به کتاب فهرست ابن اعتقاد نداشه کتاب درش عقادات زیاد و لذات خیلی کم داشت شرح میکنه و یک نواستم نقل نمیکنه اونجوری که اونجاش اینجا نیست من باید اون بحث نمیشه اما شیخ همه چیز رو به میکنه هیچ اصلا دیگه قانون تصریحی نیست در یک بار قبول داره یک بار تردید داره یک جو مثلا داره خیلی به عبارت فهم میکنه شفا می کنه. در همین فیلر اما شیخ در تمام مواد همین اخبر ما جماعت من ارسلنا انا من مفازنه ابن بطه این تکرار می‌شدن 150 روز 60 روز بیشتر بشه این کتاب طالسی شی تنظیم کرده من نگاه نکردم ازش شیخ فوق از این مصدر نقد میکنه یعنی سید هم بوده این نه دیگیم در بغداد بوده نه اینکه مخالف بود این مصدر در سید مرتضی بجای بیشتر روی ترفیه و قبول و اجماعات کار میکنه خب ان ابن بوته ابن از احمد و محمد بن ابن عبی امیر و ابن عبی نجران ما الان در روایات این هر دو رو داریم ابن عبی نجران و ابن عبی امیر اما ها از محمد ابن همران یه هم من خفتش رو هم بخشمون شدید این بحثشون خیلی لطیفه نزیوه میشیدو به سه سوی دانید تا به نسید